خب زحل اسم ستاره هست بیایید شروع تو جمع المذکر سالم شرط های جمع المذکر سالم شرط های موساننا خوندیم شرط های جمع المذکر سالم بیشتر هستند. الامثل رو اول میخونیم بعدش میاییم رو قواعد تا تکراری نشه دو گروه دامثل رو آورده به خاطر که گروه اول علم هستن گروه دوم وصف هستن یعنی ما اسمه های علمو جمع مذکر سالو میباندیم البته خودش میگه کدوم خودوم اسماییرو و وصحارو که شرایط حدیکی با هم فرق داره چون شرایط علم با وصح فرق داره در دو گروه آورده. فاضل محمدون، محمدون اسم علمه مفرز محمده حضار علي، غاب الابراهیمون ابراهیم کتب الاسماییلون خب ایلو همشون علم بودن اما امسلی گروه دوم، فرم مخلصون ببینید در گروه اول بخاطر این که فائل بودن همشون فیل آورده بود فاز محمدون حبر الالیون اما در گروه ال الازد تركیبی مبتدا خبران الاصدقاء مخلصون الاصدقاء مبتدا مخلصون هم خبرش هست الامال و مجتهدون الحراس و نائمون التجار و رابحون خب پس دو گروه از امسلور آورده و گفتیم که چرا الان در قواعد واضح می‌گردد که چرا لا یجمعوا جمع المذکر السالم الا العلم او الصفه ببینید میگه جمع مذکر سالم باشه نمی‌شود مگر اسمهای علم یا صفت صفت مانند مجتهد مخلص ناصر زارب معلم پس جمع بسه نمی شود جمع مذکر سالم مگر علم یا صفت و یشتارتو فی الالمی شرطای علم و علم داریم گه میگه و یشتارتو فی الالمی ان یکونن لی مذکری شرط هست در علم که بتونی اونو جمع مذکر ببندی که آقل برای آقل باشه برای چی باشه؟ علم برای آقل باشه مانند محمد مانند چی؟ خالی من تایی تا نداشته باشه بزرگوارن تا نداشته باشد. اگر تا داشت نمیشه جمع مذکرش بست مانند حمزه مانند چی؟ حمزه رو نمیشه به جمع مذکر برد چی داره؟ تا داره پس شرایط جمع مذکر سالم این هستند که در علم ما دو, دو گروه هست کلماتو میتونیم جمع مذکر جمع مذاکر سالم شوند درست کنیم یکی علم ها یکی صفت ها در الان فیلن شرایط علم رو میگه اسم خاصو میگه در علم اون اسم علم باید برای مذاکر آقل باشه و تا نداشته باشه حمزه اسم علم هست آقل هم هست ولی چی داره؟ تا داره پس نمیشه جمع مذاکر سالمش بس و من ترکیب هم کنین از ترکیب هم خالی باشه سیبوه رو میشه به جمع مذاکر سالم بود. سیبوه رو نمیشه به چی برد؟ جمدید. چرا؟ کل مركبه. گفته بود خالی من و ومن ترکیبی خالی از تا باشه و خالی از باشه؟ از ترکیب باشه این صفت علم بودن شرط های علم بله بله ترکیب دیگه ها باشه اما صفت چی شرایطی داشته باشه تا بتونی اونو جم مذکر سالم ببندی و یشتارتو فی صفتی انتکونه لی مذکرین آقل شرط هست در صفت که برای مذکر عاقل باشد خالی تا اون صفت تا نداشته باشه صفت چی نداشته باشه تا نداشته باشه دیگه چی نداشته باشه لیست من بابی افعل فعلا مؤنث ای با من و را من باب سعد بارز نیست من باب افعل فعلا از باب افعل فعلا نباشه مانند احمر حمراء مانند چی دیگه نمیشه گفت احمرون چرا نمیشه گفت به خاطر این که مؤنثش بر وزن فعلا هست خودش بر وزن افعل و مؤنثش بر وزن چی پس شرط بعدی این هست که بر وزن افعل فعلا نباشه مانند احمر حمراء شرط بعدی چیه ولا من باب فاء لون از باب فعلان فعلا هم نباشه مانند عطشان عطشا مانند عطشان عطشا طب بود نمی‌شه که دیگه باب چی فرق میکنه. موقع که میگیم باب فعلا یفعولو یعنی بر فعل فعلا نباشه مازیش بروازن فلان مزارش بر... اینجا هم مذکرش بروازنه افعال موانسش بروازن فعلا نباید بر این وزن باشه دیگه بر این باب باشه بر این باب باشه یعنی موانسش مذکرش بر این باب موانسش برون دیگه پس بر این باب ها نباشه وَلَا مما يستوي يَسْتَوِي ف و المعنس خب از اون کلماتی نباشه که معنس و مذکرشون فرطی نداره هم مذکرشی که همچیش مانند جریح مانند چی؟ جریح چون جریح یک وصفی هست که مذکر و معنس در اون مصافی هستن در شرح آورده در بحث آورده پس شرایط هر رو آورد جمع مذکر سالم اگر علم بود جمع مذکر سالم بسه نمیشه مگر این که برای مذکر عاقل باشه تا نداشته باشه و مرکب نباشه معنیت سی بوی استاذی برای صفات فتاگی بکی برای مذکر عاقل باشه نه؟ جا؟ برای صفات شمع مذکر باشه که شعر نسته که برای مذکر عاقل باشه باره؟ اگه واپر مؤنث برای مؤخر چی بزتر نمیتونه وقتی به خاطریه وقت مذکر شما مؤنث ها رو نمیتونید دست این جنب ببندید برای صفت بله شما مثلا مجتهدتون رو نمیتونید جمع مذکر ببندید وا جمع مؤنث ببندید صفت باید مال مذکر باشه تا بتونید جمع رو ببندید روز ما به شما گفتیم صفت باید مال چی باشه مال مذکرها باشه بله زاربون جمش میشه زاربون ولی زاربطل دیگه نمیشه جمشو گفت زاربون چرا؟ چون برای مذکر نیست جم... مز... زاربطل میشه زاربات به توجه شو در شرایط صفت گفته برای مذکر آقل باشه شما مثلا کتاب نمیتونی جم مذکر ببندید چرا؟ چون غیر آقله پس شرایطش این ها تا نداشته باشه اصبت الان هم شرطش میگی که تا مثلا فحامتون فحامتون که یک صفت صفت هست چون تا داره بله نمیشه دیگه جمع مذکرش بس؟ بله شرایط صفت ها میگی؟ بله بله همین ها هستن خب پس دیگه سوال دیگه یک پیش نمی آید خب قاعده یه سدو چستو یکون یلحقو بجمع المذكر سالم في اعرابه الفاظون منحق بجمع مذکر سالم میشه در اعرابش چند لا. کنی مفرد ندارند دیگه نمیشه به اینا گفت جمع مذکر سالم اولو اشرون و اخواتها اخوات اشرون اشرون سلافون 40، خمسون ستون 70. بله اینا میگن اخواتش همینا خودشون فقط اینا یک بردن از اشرون تا بله ملحقات جمع مذاکر هستند اینا پس اینام سادو شخصویه میگه منحق به جن مذکر در ایرابش میشه الفاظی یکی اولو هست جا اولو المال ایرابش اول مثل اشرون جا اشرون رجلا مررتو با رجلا رجلا ایرابشون مثل جمع مذاکره بنون کلمه بنون المال والبنون زین تل حیات دنیا المعلوم مبتدا و حرف ات بنونا معتوفه به مبتدا مرفوع از با چی؟ بله. با خب اهلون اهلون هم اه اه اه اه در قرآن اومده یا نه اومده؟ حفاظ برای کجا؟ اهلون بله بگید حفاظ عزیز جمع ايش خد كلمه الذكر إن كنتم لا تعلمون يا خود الكتاب ناخذ اهلنا خب جلوتر اربون في حديث اومده عارف في از ملحقات جمع مذکر سینون عالمون دیگه چی ببینید آقایون اینجا دقت داشته باشید عالمون یه موقع نخونید عالمون چون عالم جزء خودش جمع مذاکره جمعش عالم عالمونه این عالمونه عالمون از ملحقات اما عالمون خودش جمع مذاکره خودش چی چون اون سواس هست، اون صفات هست، اون چه از عالم صفات میشه جنب مزکر سالمش بس، چون برای مزکره و تاهم نداره. این عالمون جمع عالمه، رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. چرا عیار به؟ چرا داده؟ در حالی که از قبل اوقول نیست، ولی ملحق ملحقه چهار؟ ملحقه جنب مزکر سالمه، بخاطرین عیارشو دارد در اولین. آیه قرآن اومده. خب بریم جلوتر. پس این شروط جمع مذکر سالم بودن که اینا رو در قطرون و ندا ما آوردهند و البته شیخ سلید.